مرکردنی دلیر سلیم. گیگرانی عزیز و خوشویز جوان ترین سلاوتن لبید خوشحالین لبشی سیمی خوان نوکتی بی چشت مجاوری هجار مکریانی حتی نوالتن فرمون هوری بن. حجالي مکرانی لوکاتی که سرگذشته ژانی خویده یاته و پاش شوی کله بغداد جې لغد بیتو دت کرکوکو لای ابراهیم احمد جګې خویده کاته و بلن پاش ماوک هسته که اوج جګې خو نیو بو یبن اچاری دګراته و شری بغدا کله بغدا بم شویہ با سیک لباسکنی خوې لا کرکوګ د یاته و دله لوخته لمالکی کرکوګون توشی سید احمد سید طه حاتم پیوتم کاک چون و ادب ای مبریکوملین من چن دیم هيا هیڅ پولیسیک ناتونه به تمول کمن برجانن ناتوان بدګرن قران به حقت به صاحب سبیدګل خوم دبم وتم کاک سید احمد بلی کپییک هيا به دګل بینم کدی تو بوشت و د نالو زورش خدمت به کرد وتی بسرت اویشت بوده امزرینم سبی ساعت هشت وره با ترامبیل دا چین ماشینو کلو پلت هل دگرین بلام نچی پشی من بیاوا لپیایی بدقاول تو رم لابراهیم امپرسی گوتي زور باشا سبی هر ساعت هود گیم اوتیل گوتيان حی هو سید احمد دمی کرویشتوا استاو استاش او کابراهیم ندیتوا روش اکماموستا علی حمدی جیرانو خانخویم حتلا در باری ماکسیتو دد وو هیندیک کلیخنوف مليخنوفي تدابو کدي ګوت فلان رجیو فلان تقدمي بو من تي ناګمو هر دلم بلې لپارهوتی من زورم مرتجع نخوش ده وتم بلې بلې مرتجع زور بابه وتی اری حجر مرتجع بچیالن وتم بخود ما مسامل نش نه زانم بلام ناخوشم ده و اوم که اودمه لطوریز لبیمارستانی روسان بون مدیری دجبانی طوریز لحکمی پیشواریده که ناوی نمازی بو دگل منده لجوریگ بوین که اویش نخوش بو. هر خصه دخصه دکه او دیگو من کومونیستم ایتو منش دمود دیاره منش کومونیستم روش یک دوی اوگوتی من کومونیستم پرسیم هجار پیمنالی کومونیست شیا منش وتم نمازی حرام اگر پتر لطویلی بزانم. نه ده کرابت مود و کان وستا دسان بیکار د خلا مو د پرسی بلم امجر برسینم قزلی جو زبیحی کریان بو ل بغدا یریدان ادم روجیکټوش توشم هاد توشی ارتینه و وتی ارمنی کی در فروج د ل بچو کرکوک شاګرد با منګه 16 دینر ورګره من نه چم تولجات من بچو من جوتم والله چاکا مالت اوابی بلیتی قیثارو دو دیناری لاترمنیک است. و اگر قبولی نکردی، با دو دیناره دیتا و بغداو زیان نکی. لسر را چوم و کرکوک. لاترمنیک پرتواهان لاستودیو سونابو مشاغرد. مشاغرد یک سوریایی مسیحیه بو. شاگرد. مسیحی جامی رتوش دکرد و اکسی جوره دکرد و نوی حنابو. من لجوری تاریکه عکس مچاب دکرد. مناله آلهی آشوریشی کرد بو و بردم. مهندسی نفت و لشرکتی کرکوک بو. بو. در کرا بو نه نیزانی و کارکه ایمه بو من درواند ارمانیی که زور بدین بو زور در چوه کواسه و زور جرکشه دهتالای کارکم که با شعرش باسم کردو لحشتی بیانی و تانی ورو لچواری پاشنویجه و تا حود بو کارکوک هاوین لبغدا گرمترو زستان لکردستان سرد تره جهندم یکه لودشته لجوری تاریکی بی منفزده باوشنی برقی وها گرمده بو دا روژانه لده میگرمه ده چند جار فانیلکم و ته جرک راس ده اکند. دمگوشی، وقت ده جار ده او حلکی شرابه عراقی لده چورا. لسر لیواری چو میخواسه که همیشه وشکو تنیا لروجی بران و سیالاو ده اوی تیدایه جوریکم لأوتیل سر جسر گرد. بلام چون جوریکو چون اوتیلک کونخانویشی با قرک راوی درو دریج کلناو ده چاوه چاوه کراوه. همه دیوار قل شاون او جولانی روب خاصن د به باروج چرای انته د هلکي بوني ترشوه من لوي خاصه بو رونق بو پنجرکانی داری كونچ کولي خشتی چوار گوشي بي شوشه بو در گي وقت در گي زماني عباسيان بابزماري سر بقبنه با خشابو لغيژنه چوبو حتى دت کرد د واجيري تومار بتومار درويشت دیناریک بو و بازار کوتم گوزهک، کاتریک، خالوژو، مقالی و دو حسیر، دو استیکان، منجله کی آلمنیومو، دو قابو کوش کیکو، خیه و شکر و چاوبرینجو، هندرونم کری، کمی وردبابتی دیش، کلابیرم نمایا، لفشم لبگ داره نبود، مال هیمال، کابراهیش که وقت من لعوتیال بود، راجنه دچوکر، تختی که داری نی دامه، دو نمکت پن. ویتی من جگم نیه لیدانیم بلای تو بی لیفه لسر تخت راخو تخت خود دریشکا جگل یک شمکه و چند بو نیوارا لچشتخان و شو بیانی بنان و پیخوری که وک پنی رو ماستم دگوزرن لچشتخانش وک زوربه کری کرانی فقیر دوای فوگم دکرد که هنده خورشت بسر برنج ده کن، نک خورشت و برنج هر یک بجه که گرانتر ده اون اونج یک شما که تملیه نو لجاتی خورشت تریا راشک یعن کشمیشم تیاده کرد، که شیشم بو خوام راشده کرده و، پادشا بومو تاجم نبو، تنیا لزستان و سرماده زور حالم شربو. بو، نکونی جور ده یرا، نا اگری صحبش خبری هبو. کدهاتم که دهاتم بخوام آمده دو شوشم لیپر دکرد دمخست ناو توی لیفاو لیفا کشم با پتک بتختکو دا بستاو کل سرم نانچهو دا چومه ناویاو آرقم دکرد لپر با لرز لرز خبرم دا بواوا شوشه او سر بو بونوا دیسان و دیسان او گرمکو دا شوشه که شوانه سیچوار جار کارم دکرد میاروانی کرد ما کدومیست استراحت بکم وای لبوم هر راج بزار کوش چند میوه فروشک لدم خاص و برانبر انبل بجوه کم هوا رنده کرد تنزیلات، شربت بدوفلز تروزی بلوا خیاری امام قاسم هزاران شتیتر چه قیک بو میشکی سرم دزرنگای وا ملا شکر مستافا لفایتیه و جیب و برد زور زیرک بو لدانش کدی شریعه قبول کردمو دانش جو بو دایکه دا کی فقیر بو لبندی کی میر دې کړدې بو هوا هیڅ نه بو یری دې کړرا کی په دا شریعه چې ګل خواردنو جلی ملایانه روجہ پنجه فلسې بو پولی د دره بل امر چور مانګي او چا نه هاوینه درګه ده اخره نه خواردن نه پولی گیرفن نه دانش کدش د دا کرایو د بوای خوین بربره ملال د بو نقاشو هاوینه د گزرند پیکوش آشنا بوین روش یک لکرکوک هاتلم و تی که که چم لیدکی هرچی گرام کس کاری ندومتی و تم اویبو چیا ورپیک و در جین تا دا و دانش کدا حقوق لای تو تا کار دیموه چشت و نانساز که و لفه اگ با خود پیدا که و جگه هر توکمانده بی. ملا چو بو؟ پریمو سیکی لده ای به امانت ورگرده کار کرمان با مقالین ملا اشپز بو قط نم دی برنجوشت لکی بونی دو کلی لینه. شیخ معرفی برزنجی که باسی اعدامان کرد هاتو چوی کردم. جرجر بن هر دې برډ مؤمل زانیبوی کمن چنتی نوې خوینم نشته نم همو کتب بکرنم پروژه کې چې تازه لچا بدروې هنه وتی نیوان حلبرینی پرکتبم زور له ناز احمد ام کو بشیخونه جابم دا و اتر هر کتابه در چوبایا مصری یان لبنانی و عراقی بوایا د من د پېژدا د جاریک حنا ب و پاز دروچ مرا خستی و گرد عراق بکه حتی وقتی برا هر خواه دائما و ل بسرا و دبله مقدار دگالش هزدکس دچوین دیت نی آبادان ل تانیش قصابی کی بسراهی دانیشته بوم لیپرسیم چندری و تم خلکی شام یخی گردم رای پراندم رای تکندم چه قیدری هنوز زخم بزره وح حسام حواریشم بونکره خالک گرت وتیان و تان او چی ای شوتی چون چی دوا شامی او امام حسین کشتو تا در نکوت کمن مسیحیم دسی بر برنده دگل وستاکم، کم پورتویان جارجر بسم له هند یک خرافاتی مذهبی کړ ک شې هر منی ک سالی ریش دو فلیقنه بو هرګا د هد دی ابونا باو کمن دگل عزیز مجو با کافرت نکا ای شوتی شتیوا بودلی زور کی باشه او بو پیاله اوشوتي ابونا تو شکرو جوانو بهزو تواني اگر چل مرشکت لو دشته بو برهالده کمو بليم بيانگره بو خود چندت بوده جيرين اوشوتي خون ببسینم دنبو نجيري كابره شوتي ادى اگر بلن پیارك بطنية سياسات رایوله دشت گرت کلکی هر دوانی پیک وگریدا شاپلیتی لقایم کردنو گنمی دجونانی پیسوتاندن تندن دفرموی چی؟ پورتوانوتي دلیم او درویه کی اپریلا؟ آیشوتی دست آوا لکتی مقدس داد درباریس سامسون نسرعه. پرتولانو وتی زورکتای تایبی مقدس مخند و تو. بلام هرچیز فکرم لو لنکرد و تو. پرتولانو تی نمگود کافر الدکه. ایج آیشوتی نمگود کافر الدکه. پس آن جواب پیا اگر ایمان باور کردن بدروی و شاق در بی بههر نبی. دگل پیر ارمنیک دا ببوم آشنه. کردی زور بچه دزدی. راجع لیمپرسی، او کردی چون فیروی، و توی من 20 سال میرزا خانی کل هربم، و توی خان هر بزی اسمالیه هد، چوار میرده کی قاتی خسته با سرقت، تبلاء بالاتیلا گی سری و فیتویلیه دا، رویت کدم، و توی میرزا آخر ده سالک منی بکر دعات شای منیش وتم لو سال شاتیدا چدکل وتی والله واد ریامه ام مملکت و هزار سال بیان لست تو پاک نکراوا لا اوتل بورده حاجی کی مکی میوان بو خلق بت بک وک لا حج شال زای خوید اوی اوتل دبره بی اوی ان زور کیشه گتم حاجی دگل اوی دسنیش چونی وتی باشم اصحاب پیغمبر لا تکول گوزک دا غسل ملا شکر بردی میادیدنی ملا سعدالله ناو که پیاوی که زور با دینه لمزگو تی شارجه کرکوک با خزمتی گیشتین ملا شکر پرسی فقیه کت للا بو چی لیهات؟ او کرم درکرد؟ کرد امندم گود هیتلر نویجی با جماعاتی لما دینه پیروزده کرد باوری نبو کچی دیگود پیغمبر دو آیلو ستالین کردیا کریوا بومن ندبو حاوینی گرم یان بلم جهندم بو. کابرای خوان اوتیل پانکی کی شق و شری به تیل پیچراوی دینی باواشینی خومانی پیپکین. ملا شکر وتی مال دولمندی بغدای وشتر خواره ببر پنجره و دگرنو ترهیده کن. هوای پانکه سر ترده بی. قفصه ایک وشتر خواره من دلائی پنجره آخنی تنکه ایک من پیدا کرد. در کمان دخست. پانکه من پی کرد. به نصیبی بی. حلم دجور یې ګران نفس مرتنګ بو وخت بو بخنچین لایدر کما ند دیوب کې نو په هلمو یویک درکې کړ د وکبزانی چباسه را من کرد تا وی باش بش کوخینو او چا منصری وشتره خور کما تور حل ده لا سعید من بغدامن پیو نه ده روجیک مل الشکروتی خندومه توکمی وه هر ټیک لا کې زور بکاره پی اس پی او سافور جاری کړل کړ دات ام روشتی که سیرم دیت زلام یک بلانبر به چرواچوي گامیش یک ریش یتاشي اوی جا چون من شبتم گامیش هندې ټکلا شوتی خوارد بو نیو چوانی ببو آونه ملات رب وتی قط عقل نبی، قنا مالحاته بو کرکو هات چوي دکردین بر يرمندا کفره بلور لیدان بین حوال درز دبی واب کې ل بلور جنیدا نفس بخویونه یبری قامیش من لاستکان پر او د نو فومن بو سری نفس خوردنه و چی گران بو. اگر احیانه جاریک فو من بوده خورایه و اونده پیده کنین تلبیر منده چوه و سر نده کوتین. پرسی من قانیه مال و تی بخوا باو پیاوی خیرون من و تی تو سیدی و دلاشی چاوه یک خانوی داو پیم. یمشوت من قانیه جان کابا هرکا توک بابد مبارک نیدرد دکا و تی نا باو پیاوی فرا خاصه. بو. رجی قانه با قاقه ها تجور وطی باوک دریان کردم کورا دیت می ناندخوم پاشن وطی های فاسق مالکم چولکا تی نگم من وپاری خون ناندخوم خرابیم دکل که کردو حولی دابو کاریکی دست کهو نبو گوت من ارابه دستی بجیره وردوالا بفروشه صندوق سابونک من بو کری ملاش کر وطی چوار بولبرنگی شده قانه پرسی باوه بولبرن وتمان کارت نیا بود پیدا کن. ای تو وقت تالی لیدرویشان لسریک دیگه بولبرینگ بولبرینگ. لساقت فروشی دوری خانقا دوان من کری. چون باری قواریه بو سانوا. لشعب خانگ دانشتن دوکانداری که آلمانی کامرایی ترومپیلی دفرشت لپشتو و قنع نسبه. هت پیود ملا قانع من دون بی. عیش و بولبرینگت حس عیش و تبی علی ولله حس مون ندمی. تو هیست جابی جا بی سلامو مندونه بونم بداوا با برونگی دا ساز بو مجید کاکش کش که امده فروش بو کلوپلی بقرزده کپاش پشتوانو بیداتاوا دو دسته پزدانی بو هنک بی با تجربه ای که کی فو کرد دریج و استور وک هرامی کرد قانواتی ای باوگ اما نفروشم اما با دای دا کوتک خاصه. دای دا کوتک خزانی بو تو رنگ قانعت ندی بی شتیهنده نا حزون نا دریش لاواز چاوچکولو پروش لوت شور لارومت بکندو کول جلبا پینو کلاش چکو بدنموت لګالتو ګب ده بت کلانداه اوغشنینه دهت عقیده شخص با باسی چرو چاوی خانی او ګریدیو بینانی ور سرگپو وسرګو ګالتا روج دجربمب خندایه توا لپیکنین رشوشین حل دګره دوایه گوتی باوک بدرنا بخوا امشم ابيته بز منالان بدا خوا درندمو لبيرم نمه دانه دانه کوم لنزیکي 501 بيت يه تو بير بس بهشت شخصه مهم کړد بو بس چرو چاوي خانه نو سيبون بس روح ساري نايته گفتر هموي قلکه او شيو او چقلجر دو چرکاني نونراون چاو دایکم کوم دتکنن زردوي جناو موي و دو کناي وغار جنات تزري تحتها الانهار لباس النسبدا بد ملاسكه الشيخ سميع نسيبون ام شيخ قانعي هندج ونقوز سروس ملبوز نجيم بيروز لكولوس شريف بولد بو بولاي كركوخي هجرت فرموا باوكي شيخ بولته كي دلاش هفتہ سالجيه بكواو کلش دای کی شيخ زاده نازنم کچکی دایم دوش داماو لپشتی درخیه عباو اجدادی لم سر تاو سر گدازاده بون سوال کر فل سوال کر خانه ترکی کرکوکی نه نزانی بلانبلای و سید بو هجو یکی شیخ جمیلی کرد بو سرطاقی اما بو شیخ جمیل تکیسی هر اینی آودس خانه در هر کری هیچ اقل یخ در یای او شیطان در پتر لسالک لکرکوک رام بوارد سرطه هاوینی سالی 1953 بو باسی فستیوال جوانان لبخاریس درکوت شیخ مارف گوتی وادکم دگل لوانی حزبی شیوهی بچیا بخاریس اتر بر امریش نبیو بازادی بیرو بروی خود بخلکی دنیا راب گینی اخ چند خوش بو ام سفرم بکرده دو اکسی کالی نه اشکره لیار گرتم روژک پاسپورتی که بوینم که بده دینار برتیل دروز کرا بو گرژی کرد. حسابی خوام لوستا ورگرد. گوتم دستم و بغدایه. سیچه مدانی تنکی پر لکتیب مینو نامم لشیخ مار ورگرد و چومسر قطر. لقطر دا کبر بغداد بغدا لسر کورسی دو نفری پولیسی که رو تکه سی سی پوخه کم بو چاینده یرا و تم دو چامن بو بینه. پولیس زور سواسی کردم. پاشتاو یک هستا رویی زوری نبرد. کی پولیس با دو پولیس و اوانا شما داني توان واتم باله باله همنا واتيان مالي قاچاغ توتنو متنين تدانيا واتم خوطن تماشا کنو اوش کلیل شما دان جگل لکتیب چی تدانا بو كابره افسر لبرخويا وا واتي آي ترس اخ بياناموس افندی بمان بخشا او پولیسي لتنشتد بو هاد واتي او كابره لمن ترسا بوه چای بو کرم دارا قاچاغي پیا نصحات بهم نوا روح مببراز بكا با پوليس مكا همو حرام زادن منشي كيكم لوان منشي پياموت دور لتو بيز احمد شما دانكان مو خوليبكا نوا لو سره داني نوا شایو باسا لو روجانه و کر روجانم ستو بيست فلزبو لناني خومد جراعو كتابو گواري كورديو عربي بدلی خومد کريو زورم شایی پيان بو شیخ مارف گوتي کتابن لایمندانی. اگر نشا ته بو د دم بکتیب خانه گشتي با نفوتین بخسم نکړ له بغداد مال سپار نامی شیخ معرفم بیان و چن سیلینر بدو فلان روش حاضر با یان زه کسومن بسوار اتوبوس نیرن بارګه 44م ده کوټی نه وړه بگرانی عزیزو خوشویست لیر دا حتی نکوتایی بشی سیمی خوی نوی کتیبی چشتی میجوری هجاری مکریانی تا بشکی تر شوتن ارم جیانتن شد.